405. من همه را در روی کاغذ یادداشت داشت کردم و با مطالعه آن همه چیز را می توانی به همان صورت ترتیب دهی ضمناً من هم صحنه تالار جشن عروسی را که بجدین حسن در آنجا حاضر بود و یکی از مهتران سلطان مصر هم به عنوان داماد آنجا بوده از ترتیب می دهم بعد از این سخنان وزیر دخترش به تالار رفتند و با کمک خدمتکاران همه چیز را به همان حالت درآوردند. همسر بدرالدین حسن هم خوابگاه را به همان ترتیب شب عروسی درآورد و حتی لباس های بدرالدین حسن و کیسه سکه های طلا را با همان یک هزار سکه طلا در روی همان صندلی که در آن شب آنجا بود قرار دادند به نحوی که صحنه موجود کمترین تفاوتی با صحنه شب عروسی نداشت. آنگاه وزیر رو به دختر خود کرد و گفت دخترم لغت شو و برو در بستر دراز بکش و همین که این حسن وارد خوابگاه شد اینطور وارد نمود که از خواب برخواسته ای و با شگفتی دیده ای شوهرت در بستر نیست و تعجب کردی که کجا رفته است و در انتظار بازگشت او هستی به او اصرار کن که به بستر بیاید و ضمن اعتراض کن که چقدر طول دادی به بپرس کجا رفته بودی که اینقدر طول کشیده است آن وقت روز بعد چرا که بین تو و شوهر از روی داده برای من و مادر بجردین تعریف کن شمسدین محمد بعد از آن که سخنان خود را پایان داد دستور داد تا خدمت تالار را ترک کنند و فقط دو نفر در آنجا بمانند آنگاه فرمان داد تا بدرالدین حسن را از آن صندوق بیرون آورند و او را با لباس زیر جامع و شلوار زیر به درون تالار هدایت کنند و در تالار را به روی او ببندند و او را در آنجا به حال خود تنها گذارند. خدمتکاران وزیر صندوق را باز کردند بجتین حسن در خواب بود و نمیدانست بر اون چه می گذارد توجه شد که او را از صندوق درآورده و به داخل تالار بردهند و دیگر فرصت فکر کردند و پرسش به او ندادند. او همین که در تالار خود را تنها دید با دیدن صحنهی تالار و عاش او لوازمی که در گوشه و کنار بود شب عروسیش را به یاد آورد. و یادش اومد که یکی از مهتران زشت و سیاه بوست هم در آنجا بوده است در همین لحظه چشمش به در اتاقی افتاد که باز است و چون به آنجا رسید متوجه شد که همان خوابگاهی است که شب عروسی را در آنجا به سر برده است در اینجا حیرت او به نهایت خود رسید زیرا لباس و امامه و کیسه پولهای زر را در آنجا دید با خود گفت خدای من چه میبینم؟ آیا خواب میبینم؟ آنگاه برای آنكه مطمئن شود آنچه را میبیند در آدم بیداری است نه در خواب چشمهایش را با دست مالید همسر بدرادین حسن هم طبق قراری که با شمسالدین محمد داشت به بستر رفت و پردههای اطراف تختخواب خود را ناگهان به یک سوزد و سر خود را پیش برد و با صدای لطیف و دلنوازی گفت سرور من شوهرم کجایی؟ در آستانهٔ در خوابگاه چرا ایستادی؟ خیلی وقت است که از در و از بستر بیرون رفتهای من از خواب پریدم و تعجب کردم تو را در کنار خود ندیدم. بدرالدین حسن متوجه شد که این صدا صدایی همان بانوی زیبایی است که آن شب عروسی با او خوابیده است و احساس عجیبی در دل خود کرد و وارد اتاق شد. اما در این حال آنچه را که در این ده سال گذشته بود از مد نظرش میگذراند و نمی به خود بقبولاند که این همه رویداد در زرف یک شب اتفاق افتاده است. آن وقت چشمش به لباس و کیسه پول های طلااش که آنجا روی صندلی دیده میشدند درست در همان وضعی که آنها را قبلا آنجا گذاشته بود مبهود شد و بی اختیار گفت خدایا چه می بینم؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟ من که عقلم قدع نمیدهد و نمیفهمم چه بر سر من آمده است؟ آنگاه به سوی بستر رفت و از همسرش پرسید بانوی من می توانید به من بگویید چه مدت است که من از بستر بیرون آمده‌ام. و شما را تنها گذاشته ام بانو گفت مدت زیادی نیست که شما از کنار من برخواسته اید و از بستر بیرون رفته اید فکر می کنم چند دقیقه بیشتر نباشد مثل آن که فکرتان زیاد مشغول است بعد این حسن داد بانوی عزیز فکر من مشغول نیست ولی یادم می آید که قبلا در این بستر در کنارتان بودهام، ولی در این حال به یادم می آید که مدت ده سال هم در شهر دمشق زندگی کردهام. و اگر واقعا امشب با شما در این بستر بودهام پس نمی‌توانستم این همه مدت است از شما نباشم. لطفا مرا از این سر در گمی و گمراهی خارج سازید. بفرمایید که آیا تصور من که با شما ازدواج کرده ام و تصور است یا اینکه ازدواج من و شما حقیقت دارد و غیبت من در این مدت چند ساله فقط رویایی بیش نیست. همسر بعد از این پاسخ داد چون شما شراب نوشیده بودید. تصور کرده اید که چندین سال در شهر دمشق زندگی کرده اید با شنیدن این سخنان بدرالدین خندید و گفت ای بانوی زیبا عجب تصور خنده‌داری است ولی باید به شما بگویم اگر سالهایی را که خیال می‌کنم در شهر دمشق زندگی کرده‌ام برایتان تعریف کنم برای شما هم بیلذت نخواهد بود من به یادم هست که خود را در کنار دروازه ورودی شهر دمشق حس کردم که روی زمین خوابیده ام و مردمی که از آنجا رد میشدند به من میخندیدند و با خود میگفتند حتما این جوان شبه گذشته از فرت مستی و شرابخاری به این روز افتاده است و مروری به شرح حال خود در دمشق کرد سخنان او که به پایان رسید همسرش ای کرد و گفت واقعا در حق تو بیعدالتی بزرگی کردهاند بعزالدین حسن گفت این بیعدالتی به اینجا ختم نشد بلکه مرا به شهر قاهره آوردند و به نجاری دستور دادند که دیرکی تهیه کند تا مرا و آن دیرک ببندند و دور شهر گردش دهند و در آخر سر هم زنده زنده مرا بسوزانند ولی خدا رو شو که آنچه به سرم آمده است همه اش در عالم خواب بوده بجنین حسن نتوانست شب را با آسودگی به سر آورد و خواب راحتی کند چندین بار از خواب بیدار شد و هر بار از خود می پرسید آیا باز هم در عالم رویا هستم یا واقعا در بیداری به سر می برم؟ بعد همه پرده ها را به یک سوزد و به اطراف خوابگاه نگاه کرد. همه چیز را همان گونه که در شب عروسی دیده بود میدید و با خود می گفت این همان اتاقی است که آن شب من به جای آن محتر زشت رو وارد آن شدم و حالا هم در همان بستر و با همان بانوی زیبایی هستم که در آن شب با او بودم. وقتی همه را روشنایی آفتاب فرا گرفت باز هم همین افکار در ذهنش وجود داشت و او را راحت نمی‌گذاشت. تا آنکه ظبی به در نواخته شد و شمس‌الدین محمد امای او وارد اتاق شد و به او صبح بخیر گفت. باجدی حسن شگفت زده شد، زیرا ناگهان با مردی روبرو میشد که او را به خوبی میشناخت و آن همه او را زج داده و حتی تهدید به کشتن او از راه سوزاندن کرده بود. اما حالا که او را میبیند، چهرهی کاملا متفاوتی دارد و با سیمای مهربان و نم زبانی با او رفتار میکند. مازتین با عصبانیت گفت: عجب این تو هستی که میخواستی با آن طرز وحشتناک مرا بسوزانی و به کیفت برسانی آن هم مجازاتی که از تصور آن روزگار و زندگی بر من تخت شده بود و آن همه قصه و اندوه به خود راه دادم حالا چه اتفاقی رخ داده که این گونه سر رحم آمده و با من محبت آمیز داری پیش از این بهانه‌ها این بو کشینیهای من بدون استفاده از است فلفل تهیه شده است و فقط به این سبب حکم آزار و قتل مرا فرمان دادی اما در حال حاضر مهربانی نشان میدهی. وزیر دیگر طاقت نیاورد و ناگهان خنده را سرداد و گفت داستان ازدواج او از ابتدا چگونه بوده است و شاه چگونه نسبت به او که نمی‌خواست دخترش را به او بدهد خشمگین گشته و فرمان داده که زیبای زیبایان دختر او باید با یکی از مهتران زشت روی او ازدواج کنند و چطور در شب عروسی او توسط پریزادی وارد جشن عروسی می شود و بعد به جای محتر زشت روی او به خوابگاه عروس می رود و با عروس همبستر می شود و پس از آن پریزاد او را به شهر دمشق برمیگرداند و چگونه بعد از ده سال بیخبری وزیر در جستجوی برادرزادهی خود به بسره می رود و برادرزادهی خود را پیدا می کند و ادامه سرگذشت تا حال حاضر را برای او بیان می کند و می گوید برادرزاده عزیزم همه خوشحالیم که تو را یافته ایم من با خواندن یادداشت برادر نازنینم نورالدین علی فهمیدم که تو فرزند او و برادر عزیز من هستی بعد بدرالدین حسن را در آغوش گرفت و گفت از تو مذرت میخوام که این همه سختی و رنج به تو وارد کردم و تا آنکه تو را به خانه خود نیاورده بودم نمیخواستم پرده از روی این سرگذشت برداشته شود تا اینکه بدانید چه سرگذشت عجیبی را پشت سر و چه ناراحتی هایی را تحمل کرده و چه سختی ها و رنج هایی را برخود هم وار کرده ای. تا اینکه می این خوشبختی بزرگ یعنی به فرزند، همسر و مادر و همچنین به عموی خود که وزیر سلطانست رسیده ای و زندگی و خوشبختی و داشتن همسر و فرزند و نزدیکان را بیش از پیش بدانی. اگر می که بگویم مادر تو، همسر برادرم نزد تو بیاید، و تو را در آغوش پر مهر و پر انتظار خودش بفشورد و رنج ایام و سالهای تنهایی و بی کسی و اندوه را فراموش کند قم سالهایی که فکر میکرده تو مرده ای؟ در اینجا وقتی بدردین مادر فرزند خود را در آغوش گرفت خود را در ردیف خوشبخت‌ترین انسانها احساس کرد و هر سه آنها ها ای از یکدیگر دور نمیشدند و به یکدیگر نشان دادند که میزان عشق و دلبستگی آنها به هم حد و اندازه‌ای ندارد مادر بدرالدین از شادی عشق می رفت و می گفت. فرزندم قمه دوری و اندوهی که به تصور از دست دادن تو گریبانگیرم شده بود مرا از دنیا و همه خودم بیزار و بی علاقه کرده بود حال دوباره به دنیا آمدم و اندوهی ندارم عجیب فرزند بدردین حسن که تا خونون از آغوش پدر در دمشق فرار می اینک این آغوشش را ترک نمی گفت و عاشقان پدر خود را دوست می داشت بدرالدین حسن بین سه عشق در نوسان بود زن فرزند و مادر وزیر هم پس از پایان دادن به گفتگوی خود با بدرالدین حسن به حضور سلطان رفت و شرح مسافرت خود را به شهر بسره و یافتن برادر زاده را بیان کرد و هدایایی را که سلطان بصرہ همراه با نامه برای او فرستاده بود تقدیم کرد سلطان هم از یافتن بددین حسن خوشحال شد و برای او و همسرش آرزوی خوشبختی کرد و از شمسده محمد مزرک خواست که با فرمان خود برای او و دخترش این همه ناراحتی پدید آورده است. آنگاه به فرمان سلطان شرح حال بددین حسن را در کتابی نوشتند و در کتابخانه سلطنتی سمتنتی جزد کتاب کم قرار دادند. سخنان جفر برمکی وزیر حارون که به اینجا رسید گفت ای خلیفه بزرگوار، اینک بفرمایید داستانی را که بیان کردم، آنقدر پرحیجان شنیدنی است که جا دارد ریحان قلام مرا آزاد فرمایید. خلیفه بدون چون و چرا گفت، حقیقتا شنیدنی و بیمانند است. دستور دهید که آن را بنویسند و در کتابانی سلطنتی قرار دهند، تا آیندگان آن را بخوانند و پند گیرند. آنگاه، خلیف شوهر جوانی که همسر خود را ندانسته و بر اثر سخنان غلام سیا کشته بود مورد بخشش قرار داد و از او دلدوی کرد و گفت خدا من هم از گناه تو خواهد گذشت زیرا تحت تاثیر افکار پریشان بوده ای و اراده خود را از دست داده بودی هدایایی به او بخشید و کاری در دستگاه پرشکوه خود به او واگذار کرد و تا آخر اون در خدمت خلیفه زندگی کرد سخن که به این را رسید شهریار در بحت فرو رفته بود و با علاقه بیشتر به سخنان او گوش می‌داد. انجام شهریار از داستان های شهر سال خوشنودی خود را اعلام کرد. داستان‌های بسیاری می‌دانم که سعی دارم بهترین آنها را برای شهریار بیان کنم. اینک داستان زیبا و شلیندیری دیگری دارم که می‌خواهم تعریف کنم. شهریار با خوشنودی فراوان موافقت خود را اعلام داشت. سرگذشت گوش پشت کوچک در روزگار قدیم در حوالی شهر سمرقند خیاط جوان زندگی می کرد که زن بسیار زیبایی داشت این زن و مرد جوان عاشقانه یکدیگر را دوست داشتند خیاط روزها به دکان خود میرفت و تا شامگاه به کار مشغول بود و بعد از غروب آفتاب به خانه می آمد و با همسرش به شادی و خوشی زندگی می کردند. در یکی از این روزها خیاط متوجه شد گوشپوشت کوچکندامی در کنار دکان او نشسته و آوازی زمزمه میکند و تنبوری هم می‌نوازد. خیاط مدتی به آواز و تنبور گوش پشت گوش کرد و لذت و پیش خود گفت: بهتر از همسرم هم این آواز و تنبور را بشنود و لذت ببرد. قبل از غروب آفتاب، خیاط از گوشپشت دعوت کرد که برای خوردن شام با او به خانه خیاط برود. گوشپشت هم با خوشحالی دعوت او را پذیرفت. و با هم به خانه رفتند. همسر خیاط آنها خوش آمد گفت و با روی خوش آنها را استقبال کرد و شربت خنکی برای آنها آورد و برای شام ماهی خوشمزه‌ای تهیه کرد. زن خیاط بشخابی پر از ماهی جلوی گوش پشت گذاشت. او هم با اشتهای بسیار شروع به خوردن کرد. در این هنگام ناگهان تیغ بزرگی در گلوی گوش پشت گیر کرد. و خیاط و همسرش هرچه چه کوشیدن تا به وسیله آن را بیرون آورند مایسر نشد و گوشپشت نگونبخت دچار خفگی شد و سرانجام جام سپرد خیاط و همسرش که وضع را چنین دیدند تصدیداً لاپش خود تصور کردند که هیچکس کس باور نخواهد کرد گوشپشت بر اثر ماهی خوردن مرده است و حتما داروقه شهر او و همسرش را متهم به کشتن گوشپشت خواهد کرد زن شاهر سراسیم و سراسیمه در تکوپو بودند که ای کنند تا خود را از این گرفتاری رهایی دهند شوهر گفت من که فکرم به جایی نمیرسد، که بدبختی بزرگی به ما روی رویاورده اصلا چرا این مرد به خانه آمد بعد هم چرا به او شام دادم آن هم ماهی پر تیغ و مرتب خود را سرزنش می‌کرد زن گفت من ای اندیشیدم در همسایگی ما پزشک یهودی زندگی می‌کند که بیماران بسیاری نزد او می چنانچه موافق باشی جنازه گوش را ببریم نزد او و در داخل خانه بگذاریم و فرار کنیم. شوهر هم با این راه حل موافقت کرد و بیاری همسرش سرقای گوش پشت را که اندام بسیار کوچکی داشت گرفتند و در پناه تاریکی شب چکش خانه ی دکتر یهودی را کوبیدند. خدمتکار خانه که دختر جوانی بود در را باز کرد و پرسید در این موقع شب چه میخواهید؟ خیاط گفت بیماری با خداورده که در وضع بسیار بدیست و از شما خواهش دارم از دکتر بخواهید که بیایند دم در و بیمار را ببینند در همین لحظه خیاد یک سکه طلا در مشت دختر گذاشت و گفت این هم اجت دکتر که بداند ما حق او را قبلا میپردازیم پردازیم دختری خدمتکار به سراغ دکتر رفت و با خوشحالی گفت بیماری دم در منتظر شماست و این هم حق شما که قبلا پرداختند انگاه سکه طلا را در دست دکتر یهودی گذاشت در همین فاصله خیاط و همسرش جنازه گوش پشت را به داخل خانه دکتر آوردند و او را در بالای پلکان قرار دادند و بی سر و صدا از آنجا بیرون آمدند و با شتاب به خانه خود رفتند. دکتر یهودی از دریافت سکه طلا آن هم قبل از دیدار بیمار بسیار شاد شد و به خدمت گفت «چراغ بیاورد اینجا خیلی تاریک است این را گفت و با عجله به سوی پلکان رفت. تاریکی شدید مجب شد که پای دکتر به جنازه گوش پشت که در سر پلکان گذاشته بودند گیر کند و دکتر و جنازه هر دو به پایین پلکان قلطیدند. دکتر فریاد کشید چراغ چراغ چرا معطلی، عجله کن، زود باش. وقتی خدمت چراغ آورد ورد دکتر متوجه شد که در تاریکی روی بیمار افتاده و در متیجه پرد شدن بیمار از بالای پلکان به پایین پرد شده است دویتر به تصور آنکه خودش سبب مرگ بیمار شده سخت پریشان و نگران شد و دوباره بیمار را با دقت تمام معاینه کرد و مطمئن شد که جان سپرده است و با خود می گفت یا موسا به تو پناه میبرم من که قصد کمک به این بیمار را داشتم ولی تصادفاً روی او افتادم و این بیچاره از بالای پلکان به پایین سرنگون شد. و همان دمجان خود را از دست داده است من از این پیشامد بسیار میترسم زیرا چگونه ثابت کنم که او بر اثر سقوط از پلکان فوت کرده و من هنوز درباره او و تشخیص بیماری او قدمی بر و دارویی به او نخورندم بیچاره پزشک مرتبا دست به دامان موسی و ادریس و سایر پیغمبران میشد و آنان یاری می تنبید و با خود می گفت عجب موجود بدبختی هستم چرا باید من قبل از آوردن چراغ با شتاب زدگی از پلکان پایین بروم و به جای آنکه بیمار را درمان کنم و بهبودی به او بدهم با دست خود زندگیش را پایان دادم هیچ کردیدی نمی توان کرد که سبب مرگ بیمار بیچاره من هستم من همیشه کوشیده ام هم که ناراحتی و دردهای بیماران را درمان کنم دیگر با این پیش آمد زندگیم تباه شد حتما مموری داروغه برای دستگیری من به این خانه می آیند و آبروی چندین سال ام خواهد جفت و مرا متهم به قتل خواهند کرد. با وجودی که پزشک یهودی گرفتار این افکار پریشان و ناراحت کننده بود، احتیاط را از دست نداد و بلا فاصله در خانه را بست. چون ممکن بود رهگذری از کوچه متوجه وجود جنازه در خانه او شود، دو طور جنازه را به اتاقی که همسرش در آنجا بود آورد و با دیدن جنازه همسرش دیگه کشید و از ترس بیهوش شد. پس از آنکه که زن به هوش آمد به شوهرش گفت عجب بدبختی گریبانگرمون شده. باید به هر ترسیبی از شر این جنازه خود را خلاص کنیم. زیرا اگر این جنازه تا فردا صبح در اینجا بماند زندگی ما تبا خواهد شد و دیگر نخواهیم توانست در این شهر سر بلند کنیم. همه ما را آدم کش خواهند شناخت، همین چیزمون برباد خواهد جفت باید راهی پیدا کرد و از این بلای ناگهانی رهایی یابیم پزشک و همسرش مدتی با یکیگر مشورت کردند که چگونه از شر این جنازه راحت شوند پزشک هرچه در گوش و کنان مغز خود جستجو کرد راهی به نظرش نرسید اما زن او چیزی به خاطرش رسید ناگهان فریاد زد تصور میکنم راه من چارساز باشد آن این است که در همسایگی ما مرد مسلمانی زندگی می کند. ما جنازه را رو روی پشت بام ببریم و از آنجا داخل هواکش همسایه من بگذاریم تا از آنجا به پایین افتد. این همسایه مسلمان که یکی از مواشرین سلطان سمرقند بود و و انواع خوردنی ها و مواد خوراکی برای سلطان تهیه می کرد، در خانه خود انباری برای نگهداری خاربار داشت که در آن انبار موجهای بسیاری در رفته بودند. آمد و ها را به غارت می‌بردند و این هواکش مربوط به همین انبار خاربار بود و به اتفاق جنازه را به پشت بام بردند و تناد در زیر دو کف جنازه انداختند و آن را از دهانه ی هواکش به راحتی و نرمی پایین فرستادند و به حالت ایستاده او را در کف انبار قرار دادند به طوری که دیوار انبار سنگینی بدن را نگه می‌داشت آنگاه تناب را بالا کشیدند و با خاطری آسوده به خانه برگشتند وقتی مرد مسلمان از جشن عروسی یکی از دوستان خود به خانه برگشت در حالی که چراغ بادی در دست داشت وارد انبار شد و دید مردی در گوشه انبار ایستاده. تصور کرد همان دوستدی که مرتب خاربار و های موجود در انبار را می دزد. قفل از اینکه خوراکی ها را مورهای صحرایی میبرند. به هر حال مرد مسلمان با چوب دستی محکمی شروع به زدن جنازه کرد. بعد از آنکه ضرباتی چند با پیکر بیجان گوشپشت وارد شد، جنازه بر روی زمین افتاد و مرد مسلمان همچنان او را میزند. بعد از مدتی که جنازه بدون حرکت و بدون صدا بر روی زمین افتاده بود، توجه مرد را به خود جلب کرد که چرا این مرد در مقابل این همه ضربه های چوب واکنشی از خود نشان نمی دهند. لحظه ای دست از زدن برداشت و جلوتر رفت، بدنش را معاینه کرد و فهمید که پیکر بیجان مردی است. تا بح مرد مسلمان گرفتار خشم بود اما اینک ترس جای آن را گرفت و با خود گفت وای بر من عجب کاری کردم من میخواستم این مرد دوز را تنبیه کنم ولی در کتک زدنش زیادده روی کردم تا آن اندازه که سبب مرگ او شدم با این انتقام جویی خود را بدبخت کردم حالا جواب خدا را چه بدهم چگولی میتوانم به داروقه و قاضی ثابت کنم قصد کشتن این دوز را نداشتم؟ مگر خدا خودش به داده من برسد و این زندگیم تباه شده است هزاران بار خود را لعنت کرد و می گفت تقصیر خودم است که به خاطر برنج و روغن و خاربار جان انسانی را گرفتم مرد مسلمان همچنان با خود سخن می گفت و می ترسید که مأمورین داروغ او را دیده باشند و در این صورت دیریازود به سراغ او خواهند آمد و نزد حاکم خواهند برد وقتی مرد مسلمان که مباشر سلطان بود متوجه شد که دزد انبار گوش پشت کوچکیست بیشتر خشب گشت و بیشتر به او آفزا و دشنام داد و می تو با این بیافی زشت و پشت کمانی و اندام کوچک چرا برای دزدی به انبار من میآمدی تا امشب اتفاقی تو را ببینم و ناچار به تنبیه و گرفتن انتقام از تو شوم و تو موجود کوچک لعنتی هم زیر زبه های تو به من جان بسپاری و مرا گرفتار قانونها حاکم کنی؟ به هر حال باید سکری کنم تا از شر تو خلاص شوم. در این هنگام مرد مسلمان جنازه کچک گوش را بردوش گرفت و از خانه خارج شد و در انتهای یکی از خیابانها آن را در کنار دکانی به حالت ایستاده به دیوار تکیه داد و بدون آنکه پشت و سر خود را نگاه کند یک راست به خانه برگشت در این موقع که هنگام صحر بود یکی از بازرگانان عیسوی که با سلطان هم نزدیک بود و مقداری از نیازمندیها و لوازم دربار را تهیه میکند از خانهاش خارج شد و میخواست به گرما برود اتفاقا مرد عیسهوی بزمی در خانه داشت و شراب بسیار نوشیده بود و میترسید که از مسلمانان اون را در این حال ببیند و به داروغه معرفی کند. به این جهت با ترس و دقت راه میرفت و مسلمانان هم برای نماز خواندن از خانههای خود به مسجد میرفتند همین که بازرگان عیسوی به انتهای خیابان رسید، برای انجام کاری در کنار همان دکانی که مباشر سلطان جنازه را قرار داده بود ایستاد و با خود فکر می‌کرد که چگونه باید آن کار را انجام دهد. درست در همین لحظه جنازه هم تعادلش را از دست داد و روی بازرگان افتاد. بازرگان به تصور آنکه دزدی به او حمله کرده، او را به سوی زمین هنداد داد و فریاد کشید: آی دوز آی دز، به دادم برسید!" صرف صدای بازرگان داروغه را که مشغول شبگردی بود به سوی او متوجه ساخت وقتی مامور نزدیک بازرگان رسید متوجه شد که مردی روی زمین افتاده و آن دیگری به سر صورت او میزند. و میگوید: این مرد ناگهان از پشت به من حمله شد و میخواست با دست های خود گلوی مرا فشار دهد که من از خود دفاع کردم اینک از او شوکی ام مامور داروغه جلوتر رفت و گفت تو که او را کتک زدی دیگر چه شکایتی داری در همین حال مأمور دست گوش پشت را کشید که او را از زمین بلند کند اما متوجه شد که او مرده و اتفاقاً گوش گوشباشت از افراد مسلمان شهر هم بود. مأمور داروغه که دید مسلمانی به دست یک نفر عیسوی که خارج از مذهب اسلام است کشته شده فریاد برآورد که چگونه جرأت کرده یک نفر مسلمان را بکشید. مافاصل مرد عیسوی را دستگیر کرد و او را به سوی داروغ خانه برد و تا آمدن قاضی او را در زندان نگه داشتند در همین مدت که مستی از سر مرد ایصبی پریده بود و حالت عادی خود را بازیافته بود با خود فکر می کرد که چگونه ممکن بوده من این مرد مسلمان را کشته باشم من که فقط او را پرتاب کردم و یک مشت هم بیشتر به او نزدم وقتی قاضی گزارش مأمور داروغه را شنید از بازرگان ایصبی توضیحاتی خواست و او هم گفت این مرد به من حمله کرد و من هم او را زدم و انکار نمی کنم که او به زمین افتاد ولی نمی که من سبب کشتن او بودم یا نه قاضی که گوزباش را می و میدانست که او یکی از دلقه های پادشاه است، فورا به حضور پادشاه رفت و واقعه را شهر داد پادشاه که دید مرد بازرگان ای است و دلقه که او مسلمان است، بدون معتری رو به قاضی کرد و گفت من نسبت به افراد غیر مسلمان هیچ ترحم و ندارم. بنابراین مرد عیسوی را به دار مجازات بیاویزید تا کسی دیگر جرأت نکند مسلمانی را به قتل رساند تا عبرت دیگران شود. به این ترتیب قاضی هم دستور داد تا چوبه دار برپا کنند و جاچی در تمام شهر جا بزند و با صدای بلند بگوید که در میدان شهر یک مرد عیسوی به گناه کشتن مرد مسلمانی امروز بعد از ظهر به دار مجازات آویخته خواهد شد و مردم می توانند برای تماشا در آنجا جمع شوند. بدون معطلی بازرگان عیسوی را از زندان به میدان شهر بردند و او را پای چوبه دار قرار دادند و تنام دار را به گردن او انداختند و حکم قاضی را در حضور جمعیت خواندند و درست در همان لحظه‌ای که مأمور می‌خواست بازرگان را به بالای دار ببرد، مباشر پادشاه در حالی که میدوید و جمعیت را به کنار میزد نفسزنان به پای دار آمد و به مأمور داروغه گفت این مرد گناه است و کسی را نکشته است من او را خوشت و باید مرا بخوشید زیرا بژم ناراحت است و احساس گناه می کنم آنگاه مأمور داروغه گفت: داستان از چه قرار است؟ مباشر پادشاه در پاسخ مأمور گفت: من نیمه های شب که وارد خانه شدم یک راست به امار خاربار خود رفتم زیرا هر روز میدیدم که خاربار مرا دوست می برد و از مقدارش کاسته می شود در سرت بودم که دوست خود را پیدا کنم. دیشب نیمه های شب که به انبار رفتم دیدم مرد گوش پشتی در گوشه ای انبار پنهان شده است من هم با چوب دستی خود او را مفسرن کتک زدم و در نتیجه ضربات من جان سپرد آنگاه من جنازه اش را به کول گرفتم و در انتهای خیابان در کنار دکانی او را در حال ایستاده قرار دادم مانور این مرد قبلا مرده بوده و مرد ایساوی در همان لحظه‌ای که مقابل دکان ایستاده بود جنازه روی او افتاده و او هم متصور آنکه دزد به او حمله ور شده، او را کتک می‌زند و بر روی زمین میاندازد و خیال می‌کند او را کشته است. در این صورت مرد یسوی قاتل نیست، او را آزاد کنید و مرا به دار مجازات بیاویزید که وجدانم آسوده شود. مباشر پادشاهی که در حضور جمعیت اقرار به کشتن پشت کرده بود، درخواست اجرای عدالت می‌کرد. با این ترتیب نمایندهی داروقه مرد یسوی را رها کرد و تمام دار را به گردن مباشر انداخت. و همین که خواست او را بالای دار ببرد ناگهان فریادی از میان جمعیت برخواست معمور اجرای حکم نگاهی به سوی جمعیت کرد و دید پزشک یهودی است که نفس جمعیت را شکافته تا خود را به او برساند در همین لحظه پزشک یهودی فریاد کشید و گفت دست نگه دارید این مرد بیگناه است او کسی را نکشته است من این گوش پشت بدبخ را ام. دکتر یهودی پس از بیان این سخنان، بیان